سایه خیال بازیگران عزت الله انتظامی حمید ربلی جلال مقدم فردوس کابیانی گوهر خیرندیش فطالی ابلیسی و زنده یاد حمیده خیرآبادی و حسین پناهی موسیقی فریبرز لاچینی نویسنده مسعود جعفری روزانی کارگردان حسین دلی شبه مرد جوان با موهای مشکی و سبیلی پهن داخل اتاق پشت میز نشسته و مشغول نویشتنه هزار سال نوری از حقیقت دور بین خیال و واقعیت دست و پا می زدم هزار سایه با هزار چهره اتاق کلچک ذهنم را اشغال کرده بودند جای نفس کشیدن نبود تن اسیر نان بود و هزار ریال معاش در دست حاکمان مطلق واقعیت محبوس مرد جوان یا حسین کاغذ مچاله میکنه مزخرف گذافه چرا نمیتونم حرف دل ما به زبون مردم بنویسم من که از اونام از پشت میزش بلند میشه و به کنار پنجره میره مردی چمیدان به دست داخل کچه دره قدم میزنه موسی دوباره شروع نوشت میکنه سراسیمه و مشتاق سی سال بیهوده در انتظار تو مندم و نیامدی نشان به اون نشان که دو هزار سال از میلاد مسیح میگذشت و عصر عصر بالیوم بود و ساندوی چه دل و جیگر ساندری چه دل و جگر مسخرهات و باز کاغذ و مچاله میکنه چرا نمیشه به سادگی آدما نوشت مثلا همین حمید که با دلش تار میزنه و با دستش سر گوسفند میبره تا شکم شکمس رو سیر کنه یا همین کوسری کوساری است محسن بله. سلام. در میشه و مرد میانسالی با موهای رویاندومی و سبیلی پرند در حالی که چندتا کتاب زیر بغلشه وارد اتاق میشه. سلام آقای کوساری. قسم میخورم برای کتابات نمادی. نه, نه نه نه کتاب نمیخوام خدا شده کتاب نمیخوام. هر تو. بیا گوش آوردم. بیا تو تو خوده بیا. این موهای فزیکی رو من قیمت کی میخوای؟ ممنون. حتما باه چكولاته میشی؟ بله دنباله همون بلخت گرینویچ این گرینویچ تاج اجازه داری یویی گفتی. پس اخه فکر کنم باش باشه اخه شعر ورسه که به درد نمیخوره که. باش کو، فرض و برم میارم پول نقل لازم دارم. حتما یه خولی پول برام فرام کن. بیا اینم قبض بابا برد سمانه هست من به توی این نباشه نه بیا ماشالله ممنونم من سه روز دیگه انشاءالله حقوق میگیرم عزیزم اگه کار نداری پیش من اولسره علاموا واسه یه پولی ای... گیر بیاد حداقل پولاش ممنونم آقای کاستری من نمیتونم مدیریت کنم خدمت شما سه تا سه‌تومانی یا ده تومانی پاره ها اینو از من خودت <تصفح> ولی سعی کن پول گیر بیاری نیاز دارم یادت بره شوخی می کنم حتماً آقای دوست داشتم آخرین شعر ما بخونم داستان یه سنجاقکی که تو مرداب راحتر از نیچه میمیره حسن بر تو در منو دوانه میکنه حسن احمد خوبه <تصفيق> بچه بیان نوار فرسته از امریکای خوبه نبوش حالشون خوبه؟ خوب؟ من تا اگه امریکا بودیم و پولو مفت میرسید حالمون خوب بود؟ کارمند دونپایه دفتر اسناد رسمی شماره فلان شاعر گمنام دکتر حسین پناهی دشکو نویسنده یک بشتگیرها و هر کارشون میره و حسین برمیگرده داخل اتاق و در میبنده و کاغذار را پرت میکنه وسط اتاق یه دفعه یاد پدر مادرش میفته امریکا دولار چنج ننخورشید مربای گل گل گل بودت مادرم دادی دا بنویش حسین، اگر نیای تطریف این دختره گلگوته رو معلوم نکنی شیرم حلالت نمیکنم نه از درستگوندان چیزی فهمیدم نه از تهرون رفتنت و بعد تصویر پیرزنی که با دختری جوان کنان دیگه بزرگ مسی ایستاده میاد جبه یا بکش حسین جو یا و مردی که کتاباشو از روی زمین پرد می پایین تو میدونی سرمایه چند فرد روی مندکت بالای 500 ملیونه؟ حسین فرده ی اتاق رو میکشه آخه مرد حسابی این هم شد بیافه تو قصد از و آخر از همه تصویر مرد جوانی به اسم همید توی ذهنش میاد که یک کله گوسفند توی دستشه و تو دست دیگهش یه ستاره گلومی یا همون مردی که کنار میزت از کتاب حسین دوخیا میباری بشر ساعت رو برای قشنگی درست کرده اما اگه تو نیم ساعت دیگه خودتو به شبیشه ایر نرسونی، قافیه رو باختی ها دیر دیرم شد اینها شخصیت هایی درستانی حسین هست فضولیه اما مثلا نمیشد قد من و نیمت بلندتر بیافرینی حسین رو دیقش رو میگوشه شیشه یفتش رو که خالیه از آب میکنه کنه و به سر و صورت و مهاش می حسین کلاه و شارگردنش رو برمی داره یه دفعه به نظرش میاد که کفشاش حرکت میکنن و پالتو و کلاهش به حرکت در میان. <تصفيق> هم گرفته بود. مرتی که تو رو چی به مهمونی از ما ها شال گردن؟ شال گردن به آدم حس مهم بودن میده قرومی مردی که یه پالتوی بلندی مشکی پوشیده و کلاهی به سر داره و شاده سفیدی داره دهنش ده رسته همه ی راهو در تصور حسین همراه شده مام زهن آدمی حیات خانه خداست خیال میباید خیال <متصفح> <متصفح> آره. میبافم یه قول خیالی درست میکنم که لهم بده رو پشتی ادم و کش به ریش ما و معزلات ما از اکسیژن بگیر تا چرخش زمین به دور خورشید بخند <متصفح> موسیقی هیی اسمت شیه قول بیابونی قلومه ها قولام قلوم قلومی ذات هم از آه هم. اما این کور رو گرده زمین سنگینی میدنه چیه؟ چیه به خود پچ پچی کنی؟ کشو بزرگی کرده؟ خب آره که تا نلشم خیال بافتن که چی؟ چی میخوای بگی؟ بخوای یا نخوای دنیا رو پاشین خیال میچرده همون؟ خالی بندی نیست جونده دلیل خیال خود خیاله خب خو بحث یعنی اگه نبود این همون بود چجوری صافت میشود؟ اونا که شب تا صبح تو خرابه خوابن و باد میلوفونن بهتر میتونن که فقط باد خیال میتونه شکن صاب ساب مدهشون سیر بکنه آره دایی اگه خیال نبو که این پیزه بونا بولشون رو دو چرا آجادو حبس نمی کردن؟ اون وقت میدیدی که تو سر تا سر دنیا یه کافم پیدا میشد که یه بشر متمدن بتونه جر جر سندریشو برخصونه و مشروبشو با خیال راحت بکنه دلو دریا کنم و بقل دستید بگون چاکر تو روزی ست دفع زیارت میکنم این حسین از این طرف از این حسین با حاضره نیجا هم آشنا میشه شب بخیر. شب بخیر تو زهر و مار حتما باید دیر میامدین تو آبرو برا آدم نمیذاری بیا زونتر معرفید کنم همی تنجیم ساعت ممتظره دید خب الاجر لازم بدونی من از همه معذرت بخوام من, من حواسم پیش قلومی بود موزامی تکی از تو چی در چی؟ هیچ حرف راست میگه دیگه یه وقت بدت نگذره استاد بزرگ خوب واسه اینو ما رو کشتی خانم خانم این همون حسین خودمونه که می گفت سلام ساش حالا می دیدن مشتاق زیارتتون بودم منم همین چه با مزده موشین خانم از طرفدارای پرابا قرص هنره آدم خیری هم هست آقای محچری آقای دیوان بگ معرفی میکنم آقای حسین پناهی پناهی دشکو بله بله پناهی کوف دش میدونین یه تازگی خاص تو شعراش هست شاید به خاطر دهاتی بودنشه جالبه باید شنید اهل بایرحمده که و با رحمت بله بله خودشه بفرمید بفرمید در حال نباختن سازه حمید دوست حسین حسین در حال خوندن شعره سنگ اندیشه به افلاک مزن دیوانه زن که انسانی و از تیره سرتاسانی چی چیانی؟ سرتاسان منظورم اندیشه های آسیب وزیر بشنی زهره گوید که شعور همه آفاقی تو مورداند که تو بر حافظه اش حیرانی در ره عشق دهی همسر و هم سامان را چون به معشوق رسید بی سر و بی سامانی مست از هم به سه روشن خیشی مستی توش بر آینه در آینه سرگردانی راز در دیده نهان داری و باز از پی راز کشتی دیده به طوفان و خطر میرانی بس کنی دل که در این بزم خرابات شعور هر از شعر تو دارد به بغل دیوانی نب اسرا خرو بند و میندیش به راز بر ناز قافله مونگ و ملخ در ما غیر قابل تموم به شاه این قذلوارهای که اینجا نیست یه چیز نوتری میخوندی بار و تازه زرورک دارا ورده بودم همش تقصیر این قلومی که اینا داده دستم قلومی دیگه چیه؟ قلومی قلومی <تصفيق> قلومی قلومی خودمون خلاقم سگی شد که میدونین که همون هر zaman نظرت بخوام بخوا. خانم ها از چه چی نظرات بخوای اتفاقا تمس جالبی ورود این تو نیست نشینی আরে آره، یه تمسخر کامل <تصفح> منجورم طز بده صد کلمه در کارتونه مثل نمونه که آدم روی گران پیانو استفراغ بکنه آره شما من یاد داد استانم <تصفح> شما کمک کنید چندتا تا کاراش چاپ بشه بقیهش با رونماییتون درست میشه <تصفح> بایجس همین نفر بعد شروع میکنه بخوندن با تشکر از میزبان گرام جناب آقای دیوان بیک من شعرم را به مبارزان جنبش همستگی پقی میدونم در گوشه های رازبونه قلبم نشست و گریست و ایش میدونی شما یه انقلابی هستید یک انقلابی به معنی دقیق کلمه من چی <تصفح> جالب خب, خب رو رو خانم من من دا دا دا دا یه زاپاتام یه زاپاتای سرکیلویی که ده هزار من پول ندارم با شعص بخرم ماری ما. ما. من ترجمه خیلی بدی هستم از یک کسی به اسم بله من معمولا شعره اونو رو کشم روش کوچه یه نوی اون رومه اصلا تو کوچه به دنیا یعنی آمده شب تا تو کوچه ها پرسه میزنه و اشعر میکنه فقط به کوچه ما که میرسه شعراش جار میزنه هیچ میدونین در منظومه امنام. قلومی من یه ستاره بله یه ستاره میگه یه ستاره میشنگیم فقط یه خورده دستش کچه بله نون و سنگک و تافتون میدازده میده به بهگردها اما خودش نون بولکی میخوره میگه میخواد یاد کراغلو زنده کردم چه شخصیت جالی میخوره خب خانم ها و آقایون من باید دارم چون قلومی میدم در منتظرمه ببینم میشه من بیام ببینم نه, نه نه نه چرا خطرناکه آخه زیادم معاشره بله اون حتی صورتشو میبرده که کسی شیختشو رو چه آخه دماغو نوری لالی خوره برده نه آخه من شیراشو بیاریم بخونی اینک من مجموعه میتیه برای تقله درم بیایی این تار بزنیم خسین حمید از را بلند میشن و را میفتن یه دفعه برق ساختمون قطع میشه میگم تا خیلی کلکی ها با این علومیت حسابی رو گذاشتی سر کار فرده روز حسین تو محل کارشه که ظاهرن یه دفتر اسناد رسمی سال زده تو سر محالت نه و یه روزه دلار اومده رو هفتاد چرا سه دو روز دیگه نصف اینم نمیارزه میکنم ردش کن بره بگو چهر هر شما سلام بدین. رحمت که همزاده من با ردش کن آقا آقا جا من قبل اینا را دیدم مدارک تو ناقصه خریدار سرباز فراریه نمیش مرد فروشنده میره پیشه همکار حسین خریدارشونیه سرباز فراری بیشم چاکرم بفرم چشمه مایی درستش کن درستش کن، رازید میکنه یه عرف آنوی هستی سخت میگیرن جون شما تو درستش کن، رازید میکنه خوشی، تو سردف دست رو میکنم ببینم چی میکنم ای بنا، همتگر باما، بحث و جدل خریدار رو فروشنده خوش ده، فرمایی دشت تمامه تمام هستیم منه اگه بدبختی نداشتم، که نمیفروختم پونسد هزارتون من دبر واسه من خیلیه مردن به طرف میزه حسینی آقای حسین پناهی دشت به فرمایی بشینی تا نوبت تو بشی بشی نمیتون نوبت هم بشم شما دیشب منزل آقای دیوان بیچ بودی منزل دیوان بید بگه لابا شما موجود تشتیدش خوش بست نه خیلی من اونجا نمودم تو از سرقت اتفاق افتاده که شما باید به آگاهی به چند سوال جواب بدید. آگاهی؟ آگاهی. بله آگاهی. ببخشید من باید بدم آگاهی. بفنده. داخل آگاهی باسپورس، ابری مرد صاحب خونه حسین همین و دو تا خانمی که توی مهمونی بودن موجود بود. به جز این دو تا آقا بقیه خودم دعوت کردم. به ثمن غیابی. هر چقدر ولیس. یعنی اصلا نمیشناسیشون؟ نه خیر. آقا عبی گفتم که ایشون نویسنده و شاعر تشریف دادن. اصلا که گفتم من اینا رو مثل بچه خودم میشناسم. خیلی هم باید افتخار کنین که همچین هنرمندایی تو خونه شما قدم گذاشتن. آقای عبی راست میگن. کارشون واقعا فوق‌العاده بود. درباره‌ی قلومی چیزی نمیگین حسین آقا؟ قلومی؟ دوستستون قلومی رو میگم. نوشین خانم شما دیگه چرا باور کردی؟ قلومی فقط یه شوخی شاهرانه بود بهتر توضیح بده حمید میاد بفاهم. که یه نیزه باز برسن بفرم نقا قلام ملقب ببخشون جنف آقا آقای پناهی دشگو از صادق ترین که من میشناسم البته قبلن که بنده به خاطر شغل نویسندگی و شم مثلا. بله قبلن مفصل فرمودید ای بابا این بنده خدا یه چیزی گفت شما دیگه دیگه زل آخه خودش گفت دستش کجی البته داخل نیومادن تنو در منتظر ایشون بودن وضعیت که قرمز شد دیگه چیزی معلوم نبود بعدم که برگوند آقای پناهی تاشیک برده بودن خانم این حرفا چیه موسی خودش گفت جنوب سفران بندر رفت بیرون اسم فامیل و آدرس بله فامیل کلام چیه کوچا میشه پیداش دبینید اون شب من و حمید با هم رفتیم بیرون هیچ که هم منتظر ما نبود راست میگه جناب سرمان به خدا. احتمالاً برق که رفته داشته رفته با کارش انجام بوده <تصفيق> <آه>. آدرس <آجه>. آخه, <تصفيق> آخه، کسی که کی وجود نداره نمیتونه اسم فامیل داشته باشه قلومی فقط یک چیز خیاری همین مگه خودتون نگفتم قد بلند و لاغره؟ بینید راله گوششم جوام از بین برده ای بابا مگه نش ندین خانم؟ قد بلند لاغر و جزامی اه اه، جناب سربان تو رو قرآن ننمیسی نارو را کنر درست میکنه جناب سربان راستش گفتن بلگرده و عادث مشخصی هم نداره مثل یه هوبو زندگی میکنه هوبو؟ بله یعنی یک نوبلگرده با احساس و آگاه که هنرمندم هست مثل بابا طاهر خودمون آشق نن خورشیده این ننه خورشید کیه با کجا زندگی میکنه جناب صرفان ننه مادر منه شما به ننه چی کار دارین؟ من چی گفتم عاشق ننه گفتم که از مربای گل ننه خوشش میاد آخه میدونین ننه هر روز برای جبه مربای گل محمدی درست بکنه بهتر سر نخ پیشه همین ننه به ای بابا اخی جناب سر با مادر من با قلونی چی کار داره آقای اون خانو ما این بنده خدا گفت یه قول خیالیه حمید دو حسین و عبری همه سفر ماشین امشب باید آب کنک میخوردی حسین اقا بسیار متشکرم آقای جانوال جان فدکار اما این قلونی تو هم با خوبی میشه دزی خیال از واقعیت نه نه نه یا واقعیت را مخت می کند نه نه نه قلوبی سارق خیالی نه باید اسم بهتری براش انتخاب می کردی فیلن که من با همین اسمی چارم می اه... یعنی اصلا کسی رو به این اسم نمی شناسی که آفستی رو بدیم واره قضیگر را بکنی سهرامار <تصفح>. <تصفح> فقط باید پای مادر من را بمیده کشی این ماجرای قلونی نیکنی یه فیلم نامه به نویزی ها فکرشو نکرده بودم کاری نکنی جز ردیه باشه دوباره پیر مرده به شاش دو رد به خوابه نه ما همه کرده آره حضبش کرده ولی به جاش یه پیر زن گذاشته که به خروسه چشمک میزنه چی شکلی شو فیلم نامه که تاییر کننده قول دادم آخرشم هم از سکانس قبرسونو بیلغم بعد از جام بیا سه ن تیگاه داری؟ من دارم بخواه همین یه ستاره خوب و عرضون گیر آوردی بخواه واسه دخترم میبا. اه نازی خانوم میخواه ساز یاد بگیرن؟ آره بابا ما رو کچل کرده چرا بابا رو بند آوردم بابا چه آزام میخواه ببینید که چند از ماشین پیاده میشن کسری صاحبکونه حسین دم در ایستاده و مردم دورش گردن ماامور دولتو دولت چرا مادر حمید میگه. عمل ساختی. تو این همه برون بال سر ما آب رو نمیتونم بیشتر خرجش کنم. کجا چیزینی چیزینی کنجا منم باید کنی من جواز ده ده آقا جواز دارم جواز شما که ماشاءالله مفتی نشدیم پول نمیدی شما چند به سواله داری از من اجاره میگیری بازا مفتکی نیش هستن ما به شما اترام بذاریم خوب چیزی آقای کانسری جان خب تو یک به جمجاشم بذار به چرایی ما فوتبال بازی بکنم سر چه کار بره سرکار پاسبان محمدی بله بفرمه شما چراییت که زمین میدیم بچه ها بازی کنن <تصفيق> اون که بیان بهت ابنیم که سن و کریت زیاد گردن تا کرد میکنیم یه جناب گفتاری واحد خرابم من پول ندارم، حقوقم کمه، تبرعم یش ندارم، منم مراصت لباس میکنم، چی بده میگی؟ همی همینم که میگیری؟ نصفش زیادیه. سرکار محمدی. از این طرف قیمت غذاها هر روز میره بالا، از این طرفم ما رو خالی میکنین. دری نگو یاره. یا سرکار محمدی، یا... دری نشو. من ورت لباس دارم، والا مثلا چیکار مخی بکنی یاره؟ حسابات میذارم زیر بغله، میگم برو ولایت تو غلات می‌کنی بس نمیشه چون کرپسمون بپوسه دیگه درگیر میشه تربیتت نداره صدام محمد بچا دزین بابا بشه ما خود ما امور این آقای گوسفندی آقای عبید چون نگرف جواز دولت جواز واختمون بله حالا همسایه‌ها بیان سر من میگن که تو چرا یک زمین نمی‌ری بچا توش ما این منده تربیت معچما با زمین بدم؟ علتش میدونی چیه علتش اینه که من از اجاره تینتارو پیشی دارم میگیرم کمتر برای اون زن آلو گارسون بفست فرنگ باشه شروع کردی ماشاءالله ان ما شاء الله گفتمم ناراحت يا خان چی میگم نمیدونم چی بگم نه خير حال <تصفح> بفر یه چیزی هم بگی نهای کوزه خب البته تو در همسایه خوبیت نداری تو کار دخالت نکن کپری خب البته بله بله وسلاغه بله بله. میگم به چه جوی خیال بافتیم معاشاری که کسی نمیفهمه بیا اینا رو بنویس اینا در ته اجتماع تو چه جوری زور میگن ها حسین معنی زور گفتن فهمیده و کلغه سرکار محمدی محمدی با عصبانیت میخواد بره به طرف گوسای و اما روزنامه یه صبح پرده مردم مشغول خوندن روزنامه معمور پلیس اومده دم خونی حسینی بچه ها سارق جزامی خیال واقعیت و لخت می کن خبرنگار هست مامور آگاهی اومده دم خونی حسینی نن خورشید دمه دره شش... نوشین اومده محله ی حسین اینا و داره دنبال خونی حسین میگرده ببخشید این شما میدونید منزل آقای حسین پنمیدش کجاست؟ بله نه بابا خیلی ها دستشیر اما مشخصاتی جه شما داده ای به همه میخوره کدوم <تصفح> مشخصات؟ چه بو میاد ها این بوی مربای گل ننخوشید مربای من به این خوشبویی نیست اونید. سلام نسی سلام نشیخ خانم اینجا چیکار کار اومدم ازت معذرت بخوام. میدونم تو رو به درد سر انداختم ای تقصیر خودمه ش... بهتر شما بفرمه نه من نباید مسئله گلومی رو اونجا مطرح میکردم پس شما هم گلومی رو میشنسیم میخیر نمستم کسی رو میشنسم آقا بی نزدیک نیخاد بترسی، برا کی لازم کنار کت کنه؟ تیکتی زیبایی. اگر آنکی بترسم نجات. خالوش هنگامی که آن دستگیر شده. ایشون باید بید اداره بو اون شناساییش میکنه. چی تیگی؟ من میتونم بیام ببینم؟ نه. من... بریم اصلا گلومی وجود نداره. برین. اصلا گلومی وجود نداره. گلومی دیگه چیه؟ شما به فرمانی شکانم سرکار من چیز هم, هم, هم, هم, هم توضیح بدم من خوشیت نیست خانم ما ببریم توی زحمت وای پس نمی خوشید شم دو لخشید خوشید خانم که گلومی شما رو به درد سار انداختن گلومیه ما ساکار بهتره بریم با کارمون برسیم یکی مثل خودت پده کننه این به دردت نمیخوره فوسین سوار مطور ممور آگاهی شده این چه خوب سوژه رو سندگیم نه چپا؟ نگو نقو, نقو میدونم چی میخوای بگی میخوای بگی رفیق بد. آه؟ بعد ها سی ساله من از این حرف ها جدیدم سی ساله همه خلافکارهای عالم یه رفیق بعد دارم تو هم یه جیش خلافکاری نداره <تصحیح> هوا پسه نگی جرمت میره بالا خودوم <تصحیح> جو خودوم جا خازه <تصحی> کاری خازه کار میدونستم میدونستم شاید هم به قولی خودت بیگناه باشه داری چوب رفیقو بعد میخوری از من گفتن های اینجور آدم ها وان از حالا خدا کنه شانس بیاری و قلومی جز به یکی از اینهایی باشه که دستشیرشون کردی خسین اومده آگاهی تا متهمین و شناسایی. یه تا عرض کردم سر کار اصلا قلومی وجود نداره مسئله کردی اول مشخصت ها میدی حالا میگه قلومی وج حقیقتی باید باید بگی تو اینجا بینویسم یه خود وقت ما رو طلب نکن بینویسی بلنشه دیونم بلنشه بلنشه بلنشه بلنشه بلنشه ببونه باید همه گونه کیسه ها رو کلشون شنفتادشون کردی حسین سوار ماشینگو توی این این همه اتفاق میافته اون وقت باید باید قلومی من مقاله خب عبری هم نویسنده است دیگه باید نون بخوره خود اینم یه جور واقعیت دیگه نیاز میپنه اونرمند و مطربی بکشونه تو توی فیلم آمد از ما یادم نزخره نزاختی یه باید توش خیل باشه خب هر شده یه خیلی هم دوشترست شاید حق با تو باشه یه یه صورتت چرا خونیه؟ هیچی بابا حاصل ساعت و اضافه کار هنرمند قرن بیستگومه حسین از توی کیسه یک کله گسفن برمیداره بودن یا نبودن بس این است مردم خفتم کار بودن آه مار همین نه؟ مار زندلی رو گذبید گذبید همین کنار خیابون میسته و کیسه یک علیه پاچه ها رو تحویل میده تنها دو کلاغ روشن برایم منده است و یک اقاقی های تاریک و از این درام هنوز یک پرد گذشته است. همین سفر ماشی میشه میادی بونه یک کل پوش بیم حاصل کار یک تارزن سلاف دو پاچه برای کتاب حافظ و پنج چل پاچه برای تعمیر تا حسین تو محل کارشه مرد خریدار با موهای بلند و سبیلی پنج بالای سر حسین ایستاده. یه مرد قوی جسته و قد بلند اسم گلومی چی آقا اشکالی پیش اومده؟ نه <تصفيق> نه نه نه خیلی من برای دوباره سر کلاش بگمشه آقای حسین پناهی باز دوباره چی شد؟ باید یه آقایی چند نفر شناسایی کنیم میبخشی من باز دوباره باید رم آگاهی. ای بابا تو پدر ما رو در بردی آبه من رو بردی اگه چهار دفعه دیگه محمول بیاد اینجا اسم من میره تو روزنامه این آقای مجم آدم های معرفی میکنه شست سال از خدا آم گرفتم تا الان پام به کلان نرسیده اما همه روزه داره بیاد اینجا. همین دیروز رفتم به سنتاق بست دادم اصلا میدونی چیه او بردستی مثل تو رو نمیخوا برو بیرو بفرم بیرو زندگی من شده قلومی بله مگه اتفاقی افتاده قلومی؟ مرد خریدار یا قلومی از روش برنیشه <تصفيق> بریم بله آقا <تصفيق> حسین دوباره همراه مأمور آگاهی به راه می‌افتند مأموری چون میاد حسین ماجرا قاضی است چتر به دست میاد که حسین بعد از تو تصور حسین با هم قدم می‌زنند امیدن که یه وقت نگی نارفیری کرد تو گرفتاری تمام رو وجود گرفتاری نر خون ده ما چه سرمون تو کار خودمون بیم تو مونوار اسم قلومی رو پیشونمون چه سرم بیم حالا اگه بایم غلط کردم، هم دلم نیتونی؟ ایچ میدونی کارو ما ازم گرفتارمون؟ تو درک بر چار تا بنویس که چار چاپ بش و چازن ک دسته و کنون بوی خوش و مای ننه این روزا چی یاد دا میده اموش کنه یاس بخره که تو اون تو تا ریختی چرخ زندگی و حدیث نرو وفا به داه میکنه حیف کردی این ا ها رو هارومان تاثیر میذاره پر یا بینیسون نویسنده شو یا بچسب به منو برگرد به این به احمد اوس جد آقا از زندگیم برو بیدن برنه میره فروسوی محل حسین یه دفعه پاش میره روی چند وای چند چند ببین ببین چی کار کردیم نره خور کی؟ حالتون خورو حسین آقا اینا نوشته ها من نازی خانم میبرم برا پدر بله پدرم کاهی از شعراتیم برا خونده از گفتگوی من رو نازی خیلی خوشم اومده ما معذرت میخونم نازی خونم من درستش میکنم حسین با عجله هست رو برمیداره شکست <تصفيق> <تصفيق> بله اما تو بازم قابل استفاده است یعنی میشه از استفاده کرده حسین نازی با عجله میره حسین چطر شکسته نازی رو میاره و برزن تو اونو میچاسمونه به دیوار اتاقش دوباره ظاهر شده تا چهی میخوای تو داریگی دلم داره میفوسه پنجره رو وا کن ببا بازه پنجره دلتو میگم دیونه بازم این اسطلاحای احمقانه رو به کار بردی چرا بلم نمی تا به درد خودم بمیرم آدمای ترسوی مثل تو ارزه مردنم نه ما رو باش که منتظریم تو زپرتی تلسم ها رو بشگنی و از ظلمت نجاتون تو خودت سراب ظلماتی دیوونه ارزت داری های ننمو درست کنی؟ ندار حسین پرچابو پر میکنم و یه دیوانه کدوم بزر خیالی تا حالاتون زمینو باربر کنی؟ گندون واقعیه لوبیا قابل تزیه هر پرت نگو پسر یه جملت منو ساخته که این رستم زال جرد واسدم یه هفته از تولدم نگذشته بچه از ترسم جاشونو میکنن پول دارا سه قفله کردن یه نفسم یه شهر رو به هم ریخته یال کوپال رستم درد بابای منو دوا نمیکنه. تا حالا مجسمه فردوسی رو دیدی؟ بچه زیر پاش قد من اونم سفید سفید مثل برف نه یک آلوی پلاسیده مثل من مگه من کیم اگه واقعیت حقیقت نشون میداد نیازی به هنر نبود دنیا رو فاشیه خیال میچرخان خیالم دل خوش میخواد سقف خیالی جلو بارونو نمیگیره وقتی صبح تا شب مجبور باشی واسه یه لغمانون سگدو بزنی و حرف یا بشنوی بشنفی و وقتی یه خیالت هم نیخوش حسین اومده پشتارگاه دیشو همین حسین اینجا چیکار کار میکنی؟ دنم گرفته اومدم باشی و اگه اینجا پاک ملته شده؟ اخواص شده اخواص دیگه برای چی؟ به خاطر قلومی قلومی به کار تو چی کار داره؟ قلومی به کار من کار نداره مقاله ابری پدر مدر آورده کار سرق نداریم کا؟ بیا هم اینجا خیر از اینجا اگوه از کار می ترسن نه مسئله ترس نیست میدونی دونی این می خوام به نیلیسندگی نزدیک باشه همسته الله به دنیا آمدن مرد صاحبی خودم هنرمند توی مملکت تونستن اونشو در بیاره که توی دوبو میش باشی یا که اون صرف نیستی یا که این خنجر صرف بنده چند تا خدا باید بشی چه بگی؟ هیچی میگم به نظر تو احمقانه است آدم با یک نگاه عاشق بشه نمیش ندم هیچی بابا که کارت تموم میشه با هم بریم بیش عبری همین در حسین توی خیابون دارن راه میدن دور دور دلالا و دلقکات نه زمان خیال با پیای شاعرانه بله شه جای خودش تارم جای خودش اما نونو باید از توی همین هر جای واضر خر تو خر به چنگا بود به خدای که اگه حافظم زنده بود مجبور بود برای سازمان تلافی طرح تلویزیونی برمیسه نجمبین میخورن پسر گرگ باش گرگ حسین و حمید اومدن بیش ابری دفتر روز نمید اولا قلومی رو تو درست کردی نه من بعدشم غلط کردی عاشق شدی بگو یه بحانه واقعی برای نوشتن پیدا کردی شاید زهر مار شاید بگو حتما خب چرا باید بکم حتما آقای ابری برادر مشان نیاز باشتم که نخون رو میسختم شاید میاز داشتم که عاشق شدم آشقه کی؟ چشمات واکم پسر املاقیت اون بد بسترده است که مختی خیال بافی برای کسی نمیذاره عبری داره تو سبقات کتاب خونه دنبال کتاب میگردم. همه خوبه نقلم بدم هم ببینم این فیلم نامه چقدر بدخط نوشتی؟ آخه من چطوری اینو بدم دست تهیه کننده باید بدم تایی پیش کنن بگم آقای عبری خودش رو دار دارش پایی ندیگه اصلا ما بگی رو استبدال نظرتو بده مشکلتون که نرشته مثل قلومی ساختنه رو باد خیال سواره مردمی که از اون رو بازنشون نون میخورن وقت خیال بافی ندارن مرد حسابی اطفاقا اونا بیشتر رو باد خیال سوارن چه اقدر کلی بافی بکنی آیا بافی؟ منو و بیا بیا میدونی چند درصد از مردم و دنیا گرستن؟ میدونی بیستوادی بیراد میکنه؟ میدونی هر ایرونی روزی چند ثانیه کتاب میخونه؟ میدونی تمدن رو کمرشی کسی این مردم ساخته شده؟ دندت نمیش حالا برو هی hey, با تو هم نادانی این سیاهی رو از بین ببن بیا میکی. آماره واقعیت واقعیت تلخ انسان تنها سیگار داری؟ عبری سیگار رو میذاره توی جا سیگاری و کاغذ های فین نامر رو میذاره لشت همون شب کسری تو تنهایی خودش داره صدای بچهش رو که روی نوکاسه زب شده گوش میده سلام پدرجون امروز روز تولد توه ما اینجا تو رو هم جمع شدیم و تولد تو رو جشن گرفتیم یکی یکی بزرگم برای خریدیم که مثل پرچم ایرانه تولدت مبارک پدرجون تولدت مبارک آها، حالا مامان میخواد به تو شما رو فوت کنه حالا، حالا، حالا فوت کرد خورا دلان خیلی برای تنگ شده حسین کناره در اتاق کوسری ایستاده و داره اونو یبوشکی نگاه می کنه کوسری نامه زنش رو باز می کنه باید موقعیت منو درک کنی عزیزم پولی که تو می کافی نیست اگه من کارت سبز بگیرم می توی سوپرمارکت جورج کار کنم فقط کافی طلاقنامه نامه رو برام بفرستی. جورج مرد خوبیه البته ازدواج من او واقعی نخواهد بود بعد از گرفتن کارت سبز طلاق میگیرم و با تو ازدواج میکنم پوری تو کاغذ و پرس میکنه روی زمین و بیر حرکت یه گوشه میشینه توی اتاق رخت خواب کوسری رو میندازه دراز میکشه توی رخت خوابش حسین میره صبح فردا حسین پشت پنجره نشسته که برق قوطی کنسسربی که روی ایگونه توجهش رو میکنه. <تصفيق> چی کنسرو میارم میتناله خورشی نازی که ننه خورشی استاده میشه تو کتی کونفوت گل خودم برات میکارم سلام نازی خانم از بابات چتر واقعا ازتون معذرت میخوام لنگیشو برات میخم متر خوده نکونید مگه بری دنبال خبر دی کار ما محمد پیچیده. یعنی سالم بشه. کار هم میشه ها. روزی دی دیگه آواله شده ننه. یا دو چرخمو بردا برو. نه، اتوبوس هست. بگو بزید بیا دو چرخرو برو بگو چشم سر کار. حسین دو چرخرو برد. چشم سر کار. یا. یا حسین جان. بگو حسینجی رو تازه خیلی نش. فکر هیچ کنمره. خازم، اون دو کاپشم تازه دوز دیدنا. موازب باش چهش حتما باید نوشین اومده دم خونه حسین سلام خوشید خانم سلام نمی سلام نوشین خانم شما اینجا چکار میکنید؟ دیشب اصلا خوابم نبورد اومدم شما و حمید به دعوت بکنم نوشین خانم حمید رفته سر کار منم دارم میرم دنبال کار آقای عبر قردادن هر طوری حمیدو میارم تو باید بیاری آخه بابا منو چه به مهمون خواهش میکنم من فقط این مهمونی رو به خاطر تو میدم. میدونی من فوقاً رجدنم نارهتی اصلا نمیدونم چی شد که توی آگاهی اسم این می رو به زبون ها بردم زیر خاک بره این قلومی که با دل دوزیاش بچه مردم از کار میکنه بیکار چی میگی بایی خودم من اصلا خودمو نمیبا مونوشی خنم من هیچ مشکلی ندارم شما نبا باید بخشید مزاهم ازوشت چی؟ چرا اینطوری حرف میزنیم؟ مردمون راحت را راحت خدا رو خوش نمیاد چاش. به خاطر گل روی ننخورشی بموشم ما برم حسین، دو شهر باید میدره با من این نسج سپرگولی میگرد و عتیق جمع. احتیاجی به کارگر و کارمن ندارم حسین به چندتا کتاب بروشی سر میزنه بعد نمیخوایم خود به نوردن اون کمه پن... میشه موفه یه نفره سخته همیخواید دیگه بابا بابا نر ماشده بوتله می خریم بابا می خریم حسین اومده چاپونی میشه آبرین یا دورووو بی در نت رابط زیر چاپ دیگه بخون برا بسه قولی muito چیکار کردی هنوز गिरफ्तार شدی کار تمومش کن بعد از اینکه سردبیر مقاله من را راجب قضی قلومی خون تصمیم گرفت قصه قلومی تو رو هم چاپ کنه عبده دیگر چه ریلیسیات میره زیر چا افلاتون که نارو بخاری و خمیازه سگم کیشم اه که نارو بخاری و خمیازه سگم رد شد سردبیر که خیلی سیاهه دیگه این آقای ابرینی باید باشه نه چیز. چیز مهمی نیست وقت تحصیل نداریم سردویر از کارات خوشت اومده کن فقط باید خط فکری تو درست کنیم زهر و مار سیاه و فراکنده می مرد حسابی پایان خوش این رمز موفقیته آقای ابری من نوشته بودم کلا ولی اونا نوشتن اولا مهم نیست مردم به این چیزا عادت کردن یا <تصم> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <üy> آزر شب بریم پیش این تهیه کننده فیلم نامتو خونده میخواد با حرف بزنه قبری و حسین اومدن دفتر تهیه کننده چه تو برد نه یا فیلم, فیلم... باید داشته باشه یا خنده دار باشه یا گریه دار آقا سانوک این چه کار داره میکنه زرد بلای اش میلیون ایوالله بیس ای هم چقدر بوده تا سرد من بگو تو بمیری بابا چخشن به رو چه سکتو هم ای ایلالله مردم عجب شانسایی میارن تو نمیشن ما برو مدتلیم بابا تحتیلش بد مکن کار دیگه ها برو من نرولش کن فربان این مویل بردم از زمیلیون قصی باشه طالب هوایی بهتر کاریم نیروی هوایی تو مایای باچا ماچا کی داریم ارسه که من یعنی فانتزی باشه اگه سینمایی باشه عشقی هم بدنی تازه گیج شد اونم طالب دره اونم طالب بود آقا جون دیو با هم طرح میهونی خود من کار کنم اصلا داستانی داره, آستانی داره. ایزو؟ نه قضیه چیه نه یا که میره بانک رو میزنه و یه شهر رو هیون <تصفح> اداره چه کار میکنه؟ یه شهر؟ یه حیرون میکنه حالا کش کن من وسط بگم یه بسیجی از جبهه بر میگرده میگونی که صاب خونه چی؟ ایچه زن و بچه شو ریخته تو خیابون اونم چند جا شکایت میبره اما فایده چی؟ دن نده توجه نمیکنه شما میبینی که فایده ای نداره اونم دست میبره به تفایلو ایوالله خودش ارامبو 20 ملیون فروش داریم توجه گفتن؟ بیس ملیون توالت آلما؟ کدون گلومی؟ تلقه بله بله لفتانزا فرشو نرسی سیران رو از همه تون بار زدیم که بابا ترسکی جان فرستدم خودم رسید چه من بفرست آره آره آره قربون <تصفيق> تنیه کننده سرش رو بلند میکنه و یه دفعه متوجه میشه که حسینو و عبری رفتن دوباره سوار دوچرخه میشه و می روزان کار با آخر شب با همون دوچرخه میاد مهمونی نوشی پیره مردی کنر در بیست داده شبتون بخیر شما باید پدر نوشی خانم باشی از اشنایتون خیلی پدرشون خارج ترشیف دارن بانده اینجا کار میکنن بفرمایید بر بر بفرما اینم حسین نگفتم میاد ولی همیشه با تحقیق نظر و مار سلام حالا جام مارت چون که سازت آوردی هم ببین آوردم ولی پیلا سدا شدر نیف جلوی اینو نمیخوام بزنم خوش میدی هی اسران نکنی بگی بزن بزنم این نگه چرا؟ حسین آقا خیلی خوشحالم که اومدی اگه نمیبادی از دل خود میشدم من میگم رو فقط بخاطر تو دادا بخاطر من نوشین خانم واقعا به تو لطف داره حسین یه پیشنهاد خیلی خوب برات داره علی عبی خدا می براش بگم بریم حسین جان بعدا بعدا شب بعد کافی وقت داری میگی بریم تاگرام بتشو ببینیم ببینم پس از قهوه خونی آشنایی داری نوشین نقاشی نقاشیا رو به حسین نشون میده این شما یه چیزی شصت تا چیزی رو همیشه بزرگتر می روستم چون اینجا بزرگ شده اون وقت توابیرش با این جمعیت تونسته حفظ کنه و اینجا این پرده رو بگیریم این سهلاب کشونه حسین بیاییم در این با منذرت نشون بدم شبون علی نکاشوندم خوشش این پرده نقاشی کرده اونجا و این میگم بشه خانم اگر منو قابم کنیم بزنیم به دیوار فکر میکنم کلکسیون رو دو وقت کامل باشه متلاش نکن خب برون مانمون که خارجه. منمون این خونه تنها و بزرگ میدونی؟ مخام یه پیشتهادت بکنم تو اگه دلت بخواد میتونی بیای تو اتاقایی ته باغ زندگی بکنی؟ میدونم بزرگ نیست اما پرایبیسی داره چی میگی؟ گنج <تصفيق> قارون نمیخوام مال فراوون نمیخوام با دیدم تو کیجه ادیه حرف میزمینی؟ من همیشه میگم بوشه خانوم تو باید از اون آدم های باشی که خیلی به فقیر فقر کمک شد میدونم میخواید چی بگی بحث احمقانه ای ارضای خود و وسیله کمک به مقرومین همیون میخواید اصلا اصلاً اینطور نیست پا چی؟ میخواستم بگم که من حوت نمی کنم شما هم بهتر این کارو نکنید مشی خانم تو خی پر از آدمایی که از من مستهقصر. خیلی خوب خیلی خوب نمیخواد داره حد بشی. چی چی خیلی خوب. آخه من مستحق تقصیرم. یعنی خودم نمیدونم خالی یه جوری زندگی کنم. حالا بهتره بریم پیش شب خیلی خوب. هرطوری میلت. من فقط حسابی پیشنهاد دوستانه کرده باشم که تو از شر قلقونی و اینا نجات پیدا شد بتونی چی به راحتی زندگی کنی. همون شب حمید حسین از مهمونی برگشتن. مگه منتظری از راه قلم نون بخوری و مطلی حسین جون من از راه موسیقی نون بابا مگه من از راه قلم نون نمیخورن؟ آقای عبری وزه شما فرق میکنه شما استخدامی آخر برژه میری و تو میگیری این حسین به حرف من گوشت نمیکنه فعیل کننده به چی گفت؟ خب منظورم برالله این همش منمن میزنه آره خب یه سری خصوصیاته که منو من میکنه زرزرش؟ حسین فناگی دشکو منهای های اطرافش یعنی حرف مفت چی چیکار کن؟ چه میدونم یه بیا چیزی بیاریم بفروش مثلا چی بیارم بفروش؟ مثلا چه میدونم هر چی چه فرق نه مثلا یه جوجه بده با... ای... همی هم همی هم این همین همسه یادمی در ایستادن توله همین رو نمیگیره چه خیال مردم راحت میشه حالا بفرمین جواب خانمو عبری رو بدیم قلومی بهش میگن دوست معمولی که نیست روز روشن هم لخ میکن وای شب. ای بابا تو کار همه چیم بخالت میکنه آپارتومان ترکیز رو گفتن چی؟ دردن کن اون که دیگی تو رو برداشت تو به حق من کار نداشته باش اطمان محترش اگه نه که من اون قصد چه کن سرت من خوش ریجان فده ها بلا به عزیزی میگم که آقا دوزده آقا اجازه میگم فدای سرد تو خود تو خاطی این نکن بابا جم جا. به جای فدای سرد گفتن بیا برو بده قفل در خونه رو درست کنن اینقدر این تنم مریضی منو نچزون خب البته فهمیدن این خبره چه خبره به لنگوازه بخ. میان دعا رو تو جمع بکنم نازی خانم این کتاب حافظی که میخواستی مرسی تو اگه داشتی؟ نمی ببرم داشتی از این منبع دره این خونه باید بسته باشید همونجورا آقای کوسری خونه همه قانونش خودم بنویسم تو بره خودت مکنی که قانونشو بنویسی بگیری نا از آقایی اومده بودن دنباله چیکار داشتن؟ میگفتم می قانونمی رو پیده کردن خان تو بری شناساییش کنیم نامه مادر صوری آدم رفته داد اخی اخی بابا من همین شوریشم از اونو کشی خیاد راستی، رفیقت هم برد درست کنه داود؟ نمیتونم بالا قد بلندی داشت دارو کرده یخده عواز تو جمع کن پسر؟ من نبفید داود برده درستش کنه یواز یواز خودو من باورم میشه که قلومی وجود دار نخواهی نیستیم که تهران بی وفات کرده حسین. آقا این دو کلم بنویس، تکلیف این گلپت رو معلوم کن. اگر نمیخوای بنویس تمام بدونیم خب. به خدا اگر جواب این نامه رو ندی، بخچمون می‌بندم و میام تهران سراغ. کوسری تو اتاق درسورهی بچه‌شو گوش می‌کنه. ددی جون، من جورج دوست ندارم. بیتو خونمون خیلی سرده. امیدوارم این آخرین نواری باشه که برات میفرستم. فرستم دلم میخواد تو آمریکا ببینمت نمیدونی برای دیدنت چه جوری لحظه شماری میکنم امیدوارم سفر خوبی در پیش داشته باشی اوسه داره می نیسه. سردمه مثل یک بابونه که تو گوش ترتش باد هی میخونه خوشگله سرمدشتت اینه تو دهن پازن پیر آب بشی آفتابه از یاد ببری خواب بشی فردا صبح ناخافل یه پشل ناب بشی پسری یه دست پل میذاره توی کیفش پسری وسایدش رو جمع میکنه بری تو گذرنامه و کیفش رو بر من در اینجا خیلی احساس تنهایی میکنم مادر و جرد شبها دیر خونه. تازه ماما میگه میخواد شبها تا صبح دو سوپرمارکت جورج کار کنه پدرجان پولی که برای ما میفرستی کافی نیست به خرجمون نمیرسه کاش میتونستی بیشتر بفرستی امیدوارم بتونی میزای آمریکا بگیری و بیای پیش ما خیلی دلم میخواد پیش تو باشم مخصوصا وقتی به درها میان مردم شد و خونه پسری مشتی آب میزنه به صورتش. از ایران چیز زیادی آدم نمیاد فقط صورت مهربون و بزرگ تو همیشه جلوی چشمامه دلم میخواد با تو باشم دردنهای یقی پیرنش رو باز میکنه. کنه دلم میخواد مزانوش بشیم و بعد ملوفهی روی صورتش حسین داره از پنجره نگاش نگاه دلم میخواد یا ایران <تصفيق> فرد و صبح رنازه پسری رو میبرد نال و ناله رادو <تصفيق> امید ای کی کی گین بودن براش حلوا میپیک والله زن به چش بذغش تو خارجم من توی چند سال ندیدم کسی رو دیدنش میاد خودت آدم دعوتی ما زحمت کشی کی مز منه بگی حالا پشت مادر بزن بریم کوما کوما بریم پروژه شو کاری یا لا اله الا الله لا اله الله دم بدن لا اله الا الله لا اله الله بعدن دم لا اله الله لا اله الله همید حسین داخل ماشین توی ماشین؟, ماشین چند تا کارتن جوجه رو جه ماشین هم نمیفهم از نوشتن و سازدن نون در نمیاد اقلن تو به اینجا رسیدی که با جرعت شعار بتیم. اما من دهاتی سر دارم و بی نهایت صاحب. مثل خرد تو مناسبات روزمره گیر کردم وقت به هستی فکر می کنم به دنبال جای انسان می گردم نون تو کاسبیه مگه ما چی بود از باقی چند تراخه حالا باید نشون می ده. الان میری زیر پول ستخنده وای می کنار جوجه ها از هم هنجانه پر یه نفرشون یه دو جوجه بخره ها تا شب نونمون تو روغنه اه چند از جوجه ها از کارتون میان بیرون، و میرن زیر پیدال گاز دیر پای همه حامد نمیتونه می ماشینو کنترل کنه و با یه ماشین تصادف میکنه. باز مسخره کردیم. از اینجا. چی ای... با رونالدی ماشین گلاویز میشه. مردم میریزن دورشون کارتن رو یجوشه، <متحش> اون زمین میشنه، <متحش> بچه‌ها جوجه‌ها رو برمی‌داره. ساختمون کوسری دارن با سرکار پسوان حق می من الانه نمی دوم جوابی نره چی بدم والله شما باید طبق مقررات طبق زبابت حمل کنین الان باید صحب کنین که برسش بیه بعد تقریب شما روشن بکنن اینجوری که نمیشه که خانه شما که مور کردن اونا کرگر جمعت روش زندگی می کنن باید حساب کرده بود ماشینو بسیاری جایلون برمیگم سازت بیاد. هم بیاد. به نظر ما شما باید تعطیل بکنیم حسین اومده در میخونه سلام حسین نظر سلام نظر خانم گریه گریه نه ای دماغتون چرا باد کرده آه داستانش مفصله کیه نزیجون مهمون داری حسین ها با پدر کار داره میاد گند. اه، حسين چلهری تو، يو تو. ممنونم، دیر وقت مزاحم نمیشم. دیر وقت چیه؟ چی شده؟ هیچ، هیچ. <تصفح> بیا، حتت ادبته ساته. ا، 1900، توازه به احترام گذاشتم. صفحه 500 من صفحه بالا میمون داریم و میرفتیم تو جشن میگرفتیم با سردویر حرف زدم فعلا تو تحریریه کاری نداریم اما تو چاپخونه چرا میتونی از شنبه بیای شروع به کار کنی از این بهتر نمیشی متشکرم شکر <تصفح> با من کاری داشتی نه آره حسین یه دوده هزیبش بیرون گره چه قشنگه آره... چرا خونیه خون دماغ ساب مردنه آه... دم حیات داری میتونی بزرگش کنی آقای عبری تو این دنیای بیل بزرگی هیشکیو نداره نبری تو توفر چون به جورت کنه یه ایدالیس دیمونهی میخوای خواستگارای نازی که رفته هم بیا با هم گب بزنی. حسega آره بابا پسر خالاش از بچگی اسمشون رو هم دیگه بوده از این سنتای نمیشه اصلا نمیشه میدونی آخه من چترش چت چترش <تصفح> میدونی یه روز بارون میومه اصلا ولش که بعدا برات مفصل توضیح میدم حسین برمیگرده خونه خدایا رضون برید زاید ننی میونه حیات نشسته و داره گریه میکنه یا الله سلام ننه خوش. سلام ننه چشمت روشن. مادرم اومده تنهاست آره کریه خیال کنی بازه دیگه مسیمه. مها اما خب مرابا پختن بدون دیگه مصری هم خیلی سخت شاید خدا اینطوری خواسته حالا که جنگ تموم شده منم دیگه مرابا نبزم نه ننخوشیدی حکمتی توش هست خدا کنه اقلن تو دیگه هر رو می نبزم برو ننه برو پیش مادرت هر کاری کردم بیت خونه ما قبول نکرد گمه خود برات قضا درست کنه ایو ویه بازم تلیده پس حمید کن رفت ماشینه بذاره یه جا النا برمی کرده تصادف کردی؟ طوری شدی؟ نه چیز مهم نهیست ببینمیت یه مشاب بزن به صورتت بزن باد دماغه بخوابه خوبیست مادرت اینطوری طوری ببینتت. آقا آقایی اومده بودن دنبالت واقعیت کم پدر ما در آورده بود حالای مردی که خیاله اومده به کمکش با من بودی ننه؟ نه نه نه میخوشید با اقبالم هم بودم حسین آبی به صورتش میزنه و میره بالا توی اتاقش سلام علیکم مادر خودم احوالت چطوره؟ چه خبر مردی زندی آه... چجوری اومده تهران او تیاره که تو برام فرستادی اومدم صدا تو ببر اومدی تهران بالای درخت سفیدار لونه کلاق برخوید درست کردی گستم یقین یه کاخ درست کردی آرد میاد یه نامه بس مادرت ددی چی شده؟ چی؟ حیفه اون بره که گلبوته برای تو فرستاده بل کن گلایه را مادر چه فایده دار؟ گلایه؟ کدوم گلایه؟ پی hey, اینومه میدم بیا تکلیف این گلبوته رو یک سره کن چرا جواد منیدی؟ دلخوشیم که با سواد داره من نون خود خودم با زحمت گیر میارم. چه جالب گل بوده؟ گل دیگه کیه؟ گل کیه؟ هم؟ گل بوده نارین که خاله نرگسش تو سرمای سیاه زمستون تو دست میذاشت. گل بوده گرمیه که آمی جالیه تو سال ماله تو شکنده میریفت گل بوده. گلگل قلیون مرحوم باباته گلگل زنیه که و آباد توتوش خاط کردن گلگل منم نه مادر من میگم زن گرفتن به این سادگی نیست گلگل زن دختری تو زندگیت نیست میخوام تا نمردم تو رخت دامادیت برینمیت رو پس بدن نه محبتش از دلم میره همین با میاد تو اتاق حسین سلام علیکم سلام علیکم خیلی خوش آمدین آه. چه عجب چرا سفره پنگ کردین ننه خورشی چه درست کرده ننه خورشی بیا مدر این حمید نه خورشید به اندازه قنامه نزمون دوستش دارم زنده باشی حسین مینده یه چفت چنده هی سبی میاد دم در امام زادی رنبان نزید گرفه ادومی کنارش ظاهب میشه چرا این پا بام اون پا میکنی دیوونه <تصفيق> خودتی برو پکارت بسی میاد کنار رو پیدا حسین ترف رو میگه بذارید حامد بیا وسطی درست حاجب سلام سلام ناز خانم زیارت قبول حاجت داشتین؟ به آدم بی حاجت همیشه بی معرفت بفهمین حاجت به کار خودتون کردیم اصلا لزومی نداشت نه خواهش منم قبول کنید میدونید نازی بعضی چیزا به بعضی چیزا دیگه خیلی مربوطه مثلا ستاره ها به آسمون سنگ ها به زمین درگا به درخت خیجانات شما شوشش. بره به گلبوته گلبوته؟ گلبوته؟ چه اسم قشنگی؟ <تصفح> خوب بله نام زدمه زده به یه برای خیلی قشنگ برام فرستاده اگه چتر شما نبود من برهشو خوردم. میخوردینش؟ خب چاره دی نداشتم. همین یه اقیه رو میگیره با اونو زور سوار ماشین میخونه و میبنتش به جای خلده با آقای سلام منو برسون خجا؟ نقومم بیا ببینم نقوم یه بیگه خوش شکرده بمیریم پلک و خازمات شایده خودم درست ما شکرده خود شکرده شکرده بابا جی چه ماخر چه ته حالا بد میگم چه خود بختی بکرم بد بختیه بیا آخرش بینم آخرش چکرده آخرش میخوام تو نمیبینی من صبح داشت مثل سجون میکرم مگه هزار دفته بهت نگفتم میخوام زم بگیرم به قرآن یه دفته پیرهنگه همچین دارم که جم نشیم خب بزن بزن بدیم چطوری میزنی همین با حسین گرابیز میشه دوزیمه یا مرحی این دوگو همین همین بکنی بزن بزن, بزن دیگه جم نشی بزن بزن, بزن راهتم کن دیگه من نبا بزنم تو چه طرفه من چه نگاه تو چه ته خیار میکنی من ندیدم از عبدالش اونجا باستده بودم دیدم چط رو نزیبه نزیب چط رو؟ بس چی رو خیار میکنی من ندیدم نفهمیدم بیدم چط مالا خودش بومن بشنم مال خودش بود گیره تو چی کنم من چطرشو شکنم باید براش چطر کردم. نه تو ماشیبه میگفتی بهت میگفتم مگه من بهتون نگفتم میخوام زن بگیرم نمیبینی یه مدتی نمیتونم تار بزنم صبح تا شب میرم مثل کار میکنم سری هندی مجان این همه دختر تو این شهر به این بزرگی است اونا ما دو تا وعده دل به یکیشون بدنیم امین جان منو قاطی نکن نازی که من میخوام اون نیست که یعنی اول فک میکردم اونه ولی بعد دیدم نه نازی برای من انعکاس یه چیزی که من دوست دارم من عاشق همه چیزای قشنگ دنیا بس قوتی کامپوت بود یه کامپوت اول فرمی گرم خرشید افتاده رو پشت بود و رفتم که برش دادن. بیان قطع خالی کمپودر من خرشیدو بخواستم نه قطعی خالی کامپیوتر این میگم نه به بفرست خاصی آخه با چی؟ من هنوز اونقدر پول نبرم که بتونم باش تا اتاق جره کنم ایناش دیگه به من مربوط است من این یه چیز خوب میدنم اگه نجون بی بردنش بردنش؟ بله پسرخالش از امریکا برگشته دیشه مرفته خاصی باریش پسرخالش از امریکا؟ ده دیوونه یه؟ نشنسیش <تصفيق> خب دیوونه است دیگه کسی که از اون سر دنیا با نام خاصی کنه معلومه دیوونه است تو فکر نمی کنی هر کسی حق داره از یه دختری جوان کنه چرا ولی خیلی نازی چیزی رو نگفته بود از من میشنویم مثل آدم ننه خرشید و بفرست خاستگاری همین بازم میگم اصل اینی که دوتی جوون همدیگر بخواه و مادرش ننه خورشید رفتن خاستگاری نازی من خواهرم الان چند ساله که داریم برای بچه همون نقشه میکشیم احزاد جون اینقدر پابند نازی بود که هشت سال توی آمریکا دست از پا خطا نکرد همش منتظر بود که جنگ تموم بشه بیاد زنشو ورداره ببره اونجا حمید منم وقت جبه بود وصیت کرده بود که اگه شهید شد تارشه بدن به نازی خانم نطف کردن بالا من حمید قد نازی دوست دارم شخصا با وسطت های فامید نازی هم کاملا مخالفم. میدونین چند درصد از بچه های فلج دنیا گذشته ولی بله، حبته خوهرم خونشو گرو گذاشته تا برای بهزاد و نازی یه آپارتمان توی آمریکا بخریم باز میگه آمریکا خانم منم این یه دونه دخته صد دفع دخته هم قلبم چی دوایی من بیا باشه باشه زندگی خرش داره خرشید خانم اگه آدم دلش خوش باشه اون خوش بهش مذهب و قلمون میده شما باید نظر خانم من بپرسیم <متصفح> بله بله موافقم البته علم جنیتیکم ازدواج فامیلی رو رد میکنم آه قلبم آی من دختر خودمو خوب میشتسم ننه خوشید. کار از کار گذشته خودم دست بالا میکنم یه دختر خوب واسه حمید خان پیدا میکنم شما زحمت نکشید خواهش میکنم شما لطفا تارتون رو ببریم تار نیست خانم عبری ستاره سفارش آقای عبری هست ابری حسین چاپونه مامور آگاهی. اومده چاپونه دنبال حسین احمد آقا جم، یه دقیقا خواه تو که دست ناماشه، من آنها برمیگردم تقصیر دیر اقتام کرده من اما این یه دونه دختر از خدا میخوام با حمید ازدواج کنه و همینجا پیش خودم باشه خب، به جای این حرفان نظر نازی خانم هم بپرسیم من که آدم منطقی هستم اون تصیفانه نازی و پسر خالش از بچگی اسمشون رو هم دیگه بوده نمیشه حالا یه دفعه از پسر خواد چون یکی دیگه پیدا شده بذاره بره نمیشه آقای عبری ویل کنید این عرب کار پوسیده ی ارتجایی رو واقعا از شما بریده حیوان سلام سرکار حال شما چطوره؟ آقا یهو یه خبر خیلی خوب براتون دارم. بلونیدو سر مرز دستگیر شدن، اونم با 10 تن طلا. ها، حلومی بله. <اقصف> جانبه. باید یه شناساییش کنی شما. بله. اونایی شرمندان داداغان خداحافظ. اوای جزئی. چون بلا نازی و ننه خورشید با هم رفتن خرید عقیدتو بهش بگو پسر خالتو میخواد یا حمید من؟ من پسر خالامو مثل برادرم دوست دارم نه جور دیگه نامخونا به این دلیمی نوشتم که برم امریکا درس بخونم نه اون ازدواج کنم اما حالا بلان شده اما از آدمای های هم سونتی تر برخورد میکنم وقتی بهش گفتم علاقم به اون مثل علاقه خ خوف علاقه بعد از ازدواج بیشتر متقره اگه بیماری مادرم نبود میشد مخالفت کرد مادر حسین داخل حیات داره با ننی خورشید می حرف میزنه حمید و حسین هم کنار حیات هم دیدم دره خریفشون دید نیست خب با مردم که نمیشه کرد چرا نشه عروسی که سرگرد مجبور میشن با همشتی کن مادرت راست میگه پسر، انتهای واقعیت شروع باز خیلی بازم تو خیال حسین ظاهر میشه تو اینجا چی کار میکنم؟ زن با گریازاری جور در نمیاد. کی کجا چی کار میکنه؟ ؟ هیچ؟ میگم زن با با گریازاری جور در نمیاد. چرا پرت میگی؟ رسیدیم به بومبز برو در خونه دختره پا تو بکوب زمین ازش خواست کاری کن ندادن ورش رو بکوب کار از منطق گذشته خب برو جنه نازی رو بگیر ازش خواستگاری کن اون بخواد همه چی درست میشه شاید هم عبی جرعت پیدا کنم و بازنش حرف بزن عصر حجر که نیست این شد راه که باقی مونده همین حمید بی اختیار دستش میره روی سازش مهم نیست که مناسبات ظاهری بشر تا چند آزه تغییر کردن مسئله زن شوهری یک مسئله ریشهیه <تصفح> <تصفح> یعنی آدم بادن آخه سیغه شرعی سندیت نداره اگه خانه رو زد می دادن، رو هر... دو... این خانم مری رضایت میدادن کار راحت نازی جان ببین کیه دکتر حمید اومده دم خونه النازی اوه طبق قراری که با منی گذاشتین با اجازه منت ملخص بشه خواهش میکنم حالا تشریف دارین سلام حمید خان با پدر کار کردشتید بله یعنی نخه برای نازی و پدر و مادرش میان زمین در نازی خانم من اومدم مثل یه مرد از شما خواستگاری کنم 250 سکه طلا که هیچ یه سکه طلا ندارم امریکا که هیچ افغانستان را شما رو ببرم. اما اگر بگین ترجیح میدین با من ازدواج کنین تو قلعه فلک و افلاک هم زندانیتون کنن میام میرز دامیتوم. چی؟ اتیم! نه دزدی ناموس! نه دزنش! ویکوشه ولک! نه دزدی ناموس! ویکوشه ویکوشه تو دزدی ناموسیه. آن عمانده امید خازگاری. گفت نزنش <تصفيق> حسین کارگره رو نشون میده که دور هم کنار آتیش نشستن آدم رفیقی مثل تو داشته باشه دیگه به دشمن نداره دیدم شد راخت جوری پای ما گذاشتی <تصفيق> خب میدونی همه جان حد اقل که نازی فهمیده که چقدر میخواهش خب فایدهش چیه؟ خب فایدهش؟ خب <تصفيق> فایدهش؟ ایجاد ارتباط مثلا اونو اونجا رو نگاه کن های عزیز نام بند. و یادت بره. یادت به همین سادگی ننه خورشید رفت خونی که عبری بعد از اینکه که مردم خریدشونم کردن تازه آقا آمده خواستگاری اونم با آبرو ریزی یه خرمن گل بروتون چرا آبرو ریزی ناشر که نکرده کافیه شما رو پس بدین سیغی که نخوندن زندگی خرج داره خورشید خوشید. با تار زدن و مطرب بازی که نمیشه کمر خرج امروز رو شکست. تازه این همه دختر خب برید خاستگاری یکی دیگه. چرا با آبروی ما بازی می‌کنی؟ امشب قرار بود عقد شرعی دخترم خونده بشه. پسر شما به هم زد آخه این رسم همسایهداریه اگه نازی خانم جواب رد بده ما زحمتی کم میکنه آخه. اخه بالا چی بگم؟ حرف دل تو بزن عروس خانم چه جوری مادرم حالش خوب نیست گردن من حق داره ابری حسین دارن تو چابخونه با هم حرف میزنن حرف بزنم یه دیدی شخی شخی زنم کرد و مو اون وقت من چیکار کار کنم؟ نازیم که سپوت کرده نازی خانم اطلاع کنه کمک میکنه؟ من یه موی حمید رو نمیدم ست تا از اونا رو بگیرم اما دیگه دیره ای دوزده بش آخه چه جوری حسین جون همین حسین شب داخل اتاق همین فقط باید نازی بخواد که دزدیده بشی یعنی باید تو را بخواد که میخواد میدونم خودش به مادرم گفته که میخواد اما میترسه مادرش از دست بره خب خودش کم دیگه نشکلی دارم که همه که گلومی خیالی هم همونجا نشسته روز روشن جلوی چش داماد می دوزدیمش واقع بینانه نیست <تصفح> چه تو تارو بودت از خیال اونوقت از واقعیت حرف میزنی. من که چیزی نگفتم گفتم واقع بینانه نیست باره کنر بینیم خیالی بی خیال خیال ضره به سره منش تقصیل این قلومی نرده قوله باز دواره شروع کردی برو کناد اگر فوت میکنم باید ببردت جرعتشو نداریم شیشه عمرم بشکنه دیگه منو نمی به درک بهت احتیاجی ندارم مردی که خیالی وجودشو داری فوت کن به فوت کن فردا صبح نازی را میبرن آره درسته خوب به ننخوشید بگو پلوی عروسی را بپزه از تو آره اشکا میدازیمش دماد ماشینش را گل زده تو دمی در آره اشکا منتظره همی در ماشینش را گل زده حقیقته نازی دلش بخواهد با حمید عروسی کن اما خاطر مریضی مادرش تن به این ازدواج داد. نگی نه خبره از خودش بپرس؟ آخ دیگه امشب برقرار میشه ای بابا بشر این قیود رو برای رفا خودش درست کرده نه شکنج دادن خودش تو ناسلامتی توی مملکت نویسنده ای یه بارم شده به با اون شعاره که تو نوشتاد دادی عمل کن بند پای لک رو باز کنیم بذاریم بپرم لک لکا <تصفح> بازم معمور آگاهی اومده دنبال حسین حسین بله رفیقه آقایی پرایی آقایی دشکو سلام سلام یه دقیقه با این کار دارم یه دقیقه با این کار دارم ابریو حسین و ممرو آگاهی سوار تاکسی هم دومد از ماشین پیاده میشه و اما حسین و, و مامو. ممرو سلامتی من اومدم تو رو ببرم آگاهی برادر من که در نمیرم که کارم که تمیشد خب باید میام آگاهی تو تند میری یکم کوتاه تو فضایت میدی که حروسی این تا جوون به هم بخورد تا جوون؟ نه, نه. اما. اما ما جزا... نظر دیگه خوربونه کنم من گفتم امون بات میام آگاهی خب به من خوشید گفته بود که خلب مادرش میگیره من نمیدونم چرا باید دوتا جوون زندگیشون قربانی خواست بزرگتر آشون باشه آره داداش ایشون راست میگه اتفاقا در همسایی ما یه دختری از خربانتون برم امون جان شما به خالت نکنی تو زمان بکنم بودم اینه به آ قربانی بیا خوبی کن بسردی سردش <تصفيق> نه نه نه نه نه شد مگر ممور در روز حسین و عبری و معمور آگاهی آنجنه در تو بلدی سیغه بخونی؟ من دوستان طلبه بودم زبج تو موکلتی نازی موکل که همه این دل از صداق المعلوم بله سیغه داره اه سلام آقای عبری شما؟ میخوام با دخترم تنها حرف بزمم میده خیلی اجازه بفن عبری با نازی تنهای صحبت شد گفتم که من نمیخوام به مادرم لطم ای بزنم نگران نباش دخترم مسئله یه مادرت بیشتر ووانیه به خاطر تو نبود سالها پیش ازش جدا شده بودم فکر زندگی خودت باش دخترم حمید یه هنرمنده دلم میخواد کار کنم تا بتونه موفق بشه حمید برای موسیقی خلق شده نه کار دیگه مبارکیتون باشه عبیر در باز میکنه حسین و معمول آقاهی پشت در برو حمید و کن شد شد خود. حمید میاد دم در آرام یک دو مبارک حمید مبارک مبارک آخه، آخه، شو شو عروس همه چی به هم خورد عروس رو دوزیدن یه همه چی به هم خورد زاماد میاد دم آرهش که دامال عروس اما همین نازی رو از پله ها میاره پایین و از میون شلوغی رد میکنه و سواری اسب سفید میکنه خوشا به حال لک لکا که خوابشون واو نداره خوشا به حال لک لکا یه اما دوستم شنونده فیلم سینمایی سایه خیال بودید از نوشته های مسعود جعفری جوزانی ساخته سال 1369 امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه تا روزی بعد و نوبتی بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میتوارم خداوند یارو نگهده خوش لک لک که خوابشون نداره